أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين و واللعنه دائمه على الدائه اجمعين اللهم اغفر و جميع المشاغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارز شد که متعرضی این مسئله شد که کفاره قیبت چیه و دو تا عنوان به اصطلاح که در مجموعه روایات ما آمده دو تا عنوان هستی که استحلال یکی هم عنوان استخدارله ارز این در بعض از عباراتی که به روایات ما برنامه گرد آمده که نه سناعه برمان بگو حالا مثلا پس می کنید یک آقای کریب پنج بار در مجالس سری شد دیگه این نهماده توی این عبارات نهماده مرموم شیخ بعد از این که این روایات رو به عزیزش نهر کرد البته این روایت سکونی که در آخر عورد کمی مشکل داشتون، اون متنش منزله احدن ففاتحوز که ارتباطش با قیبت مشکله مگر اینکه که قیبت این نوع این باید قیبت اینو ظلمه اینو باید از این مره احراز بکنی ولی انصاف ان اخبار اخوار فی حال الباق البته این رو باده سکونی ارز کردیم در کتاب جعفریات آمده لکن از اجایب اینه که مثلا عادتا اینجور چیزایی که در جعفریات هست مورد استناد دائم هم هست دائم الاسلام ارز کردیم کتاب دائم الاسلام در مصره شده جعفریات در مصره اسمش هم در از که در کتاب ایزاه صاحب دا دائم آمده کتاب الجعفریه هست عنوانش کتاب بلکه این صاحب دعا یکی از راهایی که ما احراز میکنیم مال جعفریاد یا کتاب سکونی خود کتاب دعایمه شما شواهد قطعی نشون بوده که این دو کتاب در اختیاری ایشان بوده ولو به نظر من جعفریاد همون دعای. کتاب سکونی هست بعد ایشون فهمم ولی انصاف اندل اخوار الوارد فیاد الباب کلها غیر نقییت سمن اینها نقییت سن نیست خوب اشکال کردن به که اون دعای سی و نهم سریفه سجادیه نقیه سنده سریفه سجادیه ثابته چطورشون تعبیر به نقیهت و سند کردن اضافتاً به اینکه که ایشان خودشون مرحوم شیخ تو اول بحثی که اووردن فل المستفیزت المعتذده به دعنس روایات رو مستفیزه گرفتن چطور ایشون مثلا در اینجا میگن نقیهت سند آی خوی محسن جواب دادن که مستفیز در مقابل متواتر یکی از اقسام خبر واحد درسته البته اصطلاحات خیلی اثر نمیکنه و مبانی مثل مرحوم شرف که قائل به و در موسوق صدور به حجت میذنه خیلی تاثیر نداره اما عادتا این طوره این اشعار وارده عادتا مستفیز رو حجت میذنه چون مستفیز بر اثر اینکه در حد تواتر نرسیده و از خبر واحده خارج شده شبیه خبر واحد مغرونه به شواهد میدونه چون شواهدی که برای خبر بیان یک نواختی نیست یکی از شواهد کثرت نقل ولو ضعیف یکی از شواهد افراد متعددی از این مثلا زراره نقل کردن یکی این که افراد متعددی به از آن مختلف و از امام صادق از غیر زراره از امام صادق نه همه شواهده اینا رو میگن مستفیز استلاحهنی. بعضی از شواهدش هم مطابق با کتاب باشه مطابق با باشه بعضی از شواهدش هم مثلاً مورد عمل اصحاب باشه. شواهد مختلفه. شواهد یک نواخت نیست. ما یک شواهد یک نواختی نداریم. انصافاً بناشون اینه که حدیث مستفید قبول میشه. مورد مصدوقه. اینی که آلخوی نشدن جز خبر واحده. بله اما خبر واحد به شواهده. چون از کلی در بحث خبر واحد، اونی که در بحث خبر واحد است خبر واحد خبر بدون شواهد. اون شواهد مختلفه. ممکنه این خبر فی نفسی 50% درصد و اطمینام بیاره یکیش مثلا شاهد داشته باشه باشه 60% داشتر. یکیش بیشتر 70% یه باشه 75% شواهد مختلفه استفازه رو قالبا یکی از شواهد خوب میدونن این یکی از حالا بعضی را ازش تحبیر شواهد میکنم بعضی را ازش تحبیر به, به استفازه میکنم بعضی را ازش تحبیر مقابیان بعضی هم به اینها فرموزنن لهو مطابق آن مطاقعات رو یک اصطلاحات خاصیست کارو اگر یک جایی فرصت شد میعار استفازه چیه؟ بیش از واحد باشه و زیاد بشه به هیستی که دیگه انسان به حساب ارفیر وصول دی پیدا کنه ده نفر نه هستیم پنی نفر, نفر، برای همه یکی یکی ضعیف و سند و حس میکنه آدم که این مطلب اصل داشه. البته این مقدار سر سند شاید مثلا نظرهای خوی شبیه این عبارتی که دیروز از عجلونی خوندیم در کشفات ما ایشون میگه بله زیاده و شواهد داره اما این شواهد در حدیست که نمیتونیم بگیم این موضوعه ورز نمیتونیم بگیم اما ثابت هم نمیتونیم بگیم در حدیست شواهد که بگیم موضوع نیست عبارت دیروز اما در اصحاب ما غالبا وقتی استفاده میاد میگن شواهد در حدیست که ثابته از اختلاف یک این مقدارش به اینه. که از این استفازه یا از این شواهد چه نتیجه بگیریم دیدیم که مرحومه دیدیم که مثلا علمای ما غالبا نتیجه میگیرن حجته البته این که آیه که میفن هنوز هم خبر واحده بله خب خبر واحده اما با شواهده بله مرحوم استاد خیلی دنبال شواهد نیستن، نه از کردیم در تقسیم بندی مباحث حجه خبر از کردیم. مرحوم استاد فقط صفت راوی رو در نظر میگیرن. که میگ و اعتقادشون هم اینه که این مطلب اغلاییه اغلا این کار رو انجام میدن و بعد هم شاره این مطلب پیش اغلا دیده و رده نکرده پس ثابتشون هم خلاصه نظر اونوانکیشون پس این که اخبار وارد فیهادر با کلها غیر نقیت سند باشه اما اون استفازن جای خودشه و اصالتو برای راسته اگر در بله حاضر سند اشکال کردیم حجت شرعی ثابت نشود، برگردیم به اصول عملیه اصل برایت به قلعه آیون تختز عدم وجود بله استهلال ولل استغفار نمیدم همه کتاب شما کسی کتاب میاره نه اینجا استغفار نمشه داریم این دا کتاب های دیگه چاپ های دیگه این لح ازش دارن افتاده استغفار پساد بلا استغفار. همین چاپ ماست خب یکی دیگه نه غیر از این چاپ کسی قیل از این شاید قاعدتا باید استغفار الله دیگه استغفار که استغفار خوده نسانون که دارشه دقیق شدیم بلا استغفار الله حالا اگر از قلم شیخ قدس الله نفس سخت شده مرادشون استغفار الله برای حال فرم بگه اللهم مغفر الله در مکاسه اونطور که معروفه حالا تو وقتی پیدا بکنی اون نسخه هست که دو جلدیه، قطع بحث که هواشیه مثل اخوند و هم داره، اون نسبتا نسخه سالمیه نسخه دو جلدیه، مکاسب هم داره. یعنی. وقتی هم شاکر هم مجانی میدادن تحصیل کردن. نسخه خوبیه، اون نسخه دو جلده، کل مکاسب در دو جلد، قطع بلنده. حواشی خوبی هم داره. حواشی من اون نسخه داره. انصافا نسخه خوبی اون در میان نسخ کتاب و سا... رس او از همه بهتر اصولاً من از کنم یک بار ظاهرم کتاب کتاب‌های شیخ که خط ایشان بوده در اختیار نواهای دختری ایشون چون مرحوم شیخ پسر نداشتن دو دختر داشتن که یکی به سیدونه که به شیخ ازا دو تا خاندان سپت ما داریم سفت هر دو سفت تو شیخ انصاری هستن یعنی بچه دختری یه عدهشون سادات که در تهران اندشون که شیخ افضل اغا الافیه من از آیه مرحوم آقا اش احمد صقر که از سطر شیخن از ایشون راجبه کتابا شیخ خوستان ایشون گفت جد ما ظاهرا جدشون گویا بدن تو ذهنم نیست ایشون نجف بوده کتابها پیش ایشون بوده ایشون یه سفر میاد برای شوشتر یا دزفول اون وقت اصرار میکنن ایشون میمونه این کتابا دیگه زایر میشه این سر زیاده کتابهای شیخ به خط خودش نقطهش این برمیگرده. البته ایشون میفرمودن که یک مقداری از مکاسب به خط خود شیخ در مشهد هست در کتابخانه حسان او از صادر این منو من اگر حواسن این قفلتی نشه نشیالی نشده بده اما از رسائل شیخ چیزی نیست از به خط شیخ ایشون می گفت که بعدا اونها زائر شدن تو شط کوفه دیگر چی شد این بر اثر این سفر ناگهانی و تغییر برنامه کتابهایی که به خط خود از بین رفت الا یهادین ظاهرا باید استعفار له باشه و اصالت و بقای لحد به ثابت ل مختار. باقالیشون بر فرد ل مختار بلکه تک تا یه عده خروج من ایلا به ل استقلال خاص. اگر قائدی ول ثابت کنیم استقلال، ارتباط خودیشون خود ونهمش خود احتمال دارن که استعفار له مستقیم استقلال باشه. ولایت این کیشون که به ل خاصه خاص تمر چون اگر واسه استغفار لحاظ بشه ممکن است اونجور معنا کنه معنای حکومت به اصطلاح خود خودیشون که بگیم استهلال لازمه و نه که شارع گفت استغفار له هم به منزله استهلاله که مشو حکومت لکن المفسد بکنه غیبه حقاً به اناوجو بالبراءت من نیست برای تو تو صاحب سخت شد از قدم مبارک ایشون له باشه واژه استغفار لیس الا الاخبار غیر نقی غیر نقی از سند ما ان سند لو کان نقیه کانته دلالتش ضعیف است البته این مطلب ایشون روشن نیست یعنی ایشون میگن چرا که حقوق اخرت روایات لا قائل به وجود البراعه من بله اون روایتی که به اصطلاح توش داره بله اه... بله راسته این مطلب لیکن روایت استحلال اگر فصل مثلا مصباح و ثابت باشه، پیش ما روایتی داریم که تنها استحلال آمده بقیه حقوق نیامده اتقال کردیم این اشکال مرهون شیخ که با عده از حقوق زب شده که درش استحلال لازم نیست خیلی خوب سلم نه اما جاه داریم که استحلال به تنهایی آمده مثل روایت مصباح و شریعه اگر کسی این روایت مصباح و شریعه قبول کرد این اشکال شیخ وارد نیست این مبنیست بر اون مکنه و من قضای اومد قیامل دلحوق الان من علیها المعاملته المعاملته, المعاملته من همون خب قضا روز قیاملت نید از قضای اصطلاحی به سبوتی درست فالقول بعد عدم کونیه حقا للناس به معنا من همه عبادتشون نمیم کنم عدم وجوب برای نظیر و من, من قوته. این نظیر حقوق المالیه نظیر از در منفی یعنی <تصفح> وجوبی حقاً لناس نظیر حقوق المالیه حق باشه این ثابت نیست حقاً لناس نظیر حقوق المالیه برای حق این از که این جزو حقوق المالیه نیست این لایخلو انقوبته و امکان احتیاطو فی خلافی چون دیزه کردن و لایخلو انقوبه من جهت کستت الاخبار داله بعدش هم یکی از اتبار مهم در باب استهلال همون دای روز دوشنبه بود غیبت نختف دروبه ها یا به قول ایشون اضافه برگو صحیفه سجادیه اون در که حقوق دیگه نبود ها غیر از مثاب شد. و ها وجوب الاستبراع من ها بل اعتبار سند بعضه ها ظاهرا مرادش از اعتبار سند بعضه ها همون دعای صحیفه سجادیه هست دعای سی نه خیلی نهه صحیفه سجاد والأهواد الاستهلال انتیسر و الافل استغفار و له احتیاض اینه با اینکه اگر براش به احیاد عمل بکنیم هر دو انجام بده جمع به بکنیم فرض کردیم وقتی دو تا عنوان آمد و در دور روایت مستقل بود وجوه مختلفی در جمع میشه تصور کرد یکی اینکه یک چیز قبول بکنیم یکی قبول نکنیم یکی اینکه جمع بینشون به او بکنیم یکی اینکه جمع بینشون به واو بکنیم یعنی هم استغفار له بکن که میگه اللهم اغفر من خططو هم به دلیل مشکل نداره که اگر بناس به احتیاط بکنیم بنای به احتیاط به جمع به وابه، نه به جمع به امر بگیم یا استهلاک یکیشم جمع بینهما به طولیت ابتداءن استهلاک به الا فلس که ایشون اینجا برمون این که ایشون میگه این کارو کن اینطور که به اصطلاح مساو شریعه بود که خیلی وضعیتش خرابه پس برا این این مطلبی رو که ایشون فرمودن یک نحوی جمعه به دو تا عنوان عنوان استهلال با عنوان استغفار احتیاط این نیست ایشون اگر بخوایم احتیاط مطلق رو کنیم بگیم ثابته با جمع بشه به نحوه وا هم استهلال هم استغفار هم بگه اللهم اخترل من اختر تو هم بر اساس استهلال بود احتیاضش اینه جمعه به اوه نه جمعه به طولیت نجمه به واه، نجمه به نه جمعه به طولیت، نه تن ما. اما با قطع نظر فرمان الله به صلوات اما با قطع نظر از این مطالبی که ایشون فرمیدن، دو آیه و نهم صحیفه سجادیه دلالتش یک یه تکیه داره از اول دعا نگاه بشه اصلا دلالتی به این نداره اون اصلا آلم دیگریست دعا یومل اسنین راسته روز دوشنبه اون خیلی بازه چون تصدیف به اقیبت نکتر دو از تصدیف گذشته. دعا یومل اسنین راسته اما اون سند نداره انصافا توی این مجموعه روایاتی که در اینجا آوردین کلن تو این باب اول سامی او کفال قیبته نسبیت از همشون بهتر همون کفارت و غیبه انت از من اختبته بود همینی که دیروز از سشوخه پا اجرانی خوندیم که شواهد داشت شواهدش نقل کرده بود ادهی از مساده بود همه رم گفت ضعیف ادهی رم گفت مثلا موضوع آن وزار پلانی وزار لیکن آخرش نتیجی گیری کرد چون زیاده نتیجهگیری گیری کرد که موضوع نیز حدیث لیکن به درجه حجیت هم نرسیده. بلکه شاید ظاهر عوالتی که به درجی حسن هم نسته حسن هم نیسته باز به درجه سریعی این خلاصه است. انصافا توی مجموعه روایات ما توی این روایتی که این باب داره چه آقای خویه بردن چیشون بردن چی در کتب حدیثی آمده از همش بهتر همین روایت کفارتون اختیاب یا کفارتون غیبه انتستر فل من اختبترون البته اینجا داره کلا مازکرتون این کلا ما و در متن مشهور اهل سلمت نمیده حالا اون باش یا نباشه این روایت که روایت به استدار هفت سبن عمر بود این از همشون نسبتا بهتره انصافه همچون تو کتاب کافی آمده به معلوم و هم اضافه بر اون پس کردیم مرحوم کلینی این رو از طریق احمد برقی انعبی هنه همون جه هم نقل کرده شواهد حاکیسی کتاب هارون جرم کتاب معتبری بوده نجاشه هم گفته کفی و زره. و این مثل این نقلم داره با همین سمت در کتاب کافی هست منحصر این, این دوتا احتمال رئیسی توش داده میشه یکی که از کتاب برقی باشه باز برگ به کتاب هارون جرم یا مستقیم کتاب هارون جرم به قومت این احتمالش هست با به فعالسی که اصحاب داره نجاشی باشه دادیم. نسبیه بقیه روایات این تقریبا بهتره بعدا معید است به کسیت روایاتی که سنیه ها ان رسول الله نقل کرد و اصانید متعدد و اشکال این هم فقط یک اشکال یک نفری هم هفت سبن اومد یعنی اشکال خیلی فراوانی نداره <تار> تاریخ کتاب، تاریخ مصدر تا حد زیادی واضحه در فهارس از واضحه ربایت دیگری در کافی با همین سنب داریم از حانون بلکه از همین هفت سبن عمرم داریم دقیقا همین سند که از بازم از هفت سبن عمره و انظر کردیم از این که هفت عمر به این حیعت آمده احتمالا کسره که از افرادی باشه که بران عمر داریم مثل عمر بن عبان و مثلا جزء ثقات بوده احتمالش قویه چون مثلا پدره بود مشهور باشه تا اون هرسل بن به ذهن بیاد ولی عادت اداا میدن اگر اسم خیلی مجهول باشه سه هرسل بن عمر بن فلان عادت اداا نمیکنه اگه حتما لازم باشه لذا اگر ما در میان مجموعه روایات یک چیز به درخوری داشته باشیم در این روایاتی که ما الان داریم چیز به درخوری باشه بیشتر همین روایت هفسر اونم استخبار لحب که یک شواهد از از نداره. داره اون شواهد کلن ضعیف هم یعنی هیچ کدومشون فی نفسه حتی شاد از یکی ما هم زعیفتر باشن چون توشون لحظه او و کزه و اینا داره که خیلی کار رو مشهر این راجع به این قسمت اونی که از روایات داره و اما اونچی که راجع به خود بحثه کار نداریم با روایات هر. کردی فهم عرفی در قیبت هست، اصلا احت... احتیاج به روابط هم نداره. این معنی میگه اصفاد میکنه غیبت یک نوع اذای حقه، یک نوع ظلمه. یعنی اون که شما در حق دیگری با غیبت کردن ظلمو انجام دیدی. حالا ببینید شما ظلمی که انجام میدید مثلا میز یه دستی طرفی میشونی، اینجا دیه میاد، زمان میاد. لازم نیست در تمام اون استدلال نرحدی که نعم کردم، بخوام اون رو نقد بکنم. لازم نیست هر جا که ظلم بود، ظلم به دیگری بود، حتما توش دیه باشه. ممکن است مناسب با همون ظلم چیز قرار داده باشه. لازم نیست حتما دیه باشه. و این رو اثبات بکنیم که عرف این رو میفهمه یعنی عرف بین خاصین با مثال دروغ گفتن، مثلا من دروغ رو بگم مثلا بیشتر هم کاری انجام می‌دهم بین دروغ گفتن و اینکه من یک مطلب رو که مربوط به دیگری فاش میکنم، ببینید اون عرف فرق می‌بینه اونجایی که من دروغ میگم یک حمدی است که به من نسبت میدن یک گناهی برای داره من میگن. اما وقتی میگن مطلب دیگری بگیم که نه ما تعدیمون شده ظلممون شده اصلا این عرف نمیفهمه و رضا در عده از علمای اهل سنت و غیره تو اون روایتی که مثلا منکان از این در اون مذهبتون لعقی فیمالیهی و ارزی. عرض ارز رو گفته شامل غیبت میشه این که ارز شامل غیبت بشه یعنی که شیخ میگه باید یک حق ثابتی باشه تا استحلال بیاد اینو لازم نیست که حتما از روایت در بیاریم بگیم یک ارتکاز اغلایی بوده اصلا این. مثلا این همه روایت من حیث المجموع تو استحلال آمده تو لح آمده کفارت و اختیاب آمده به این آمده این مجموعه اینا در حقیقت اگر تعبد شرعی رو هم بخواد اثبات بکنه ارجاعش بیشتر به یک فهم عرفیه یعنی یک گناهی نیست که من فقط انجام دادم بگم الله الله الله منی استخبه که براتو بله این نیست یه نوع تعدی به حق دیگرانه یه نوع ورود در حریم شخصی دیگرانه یه نوع ظلم به دیگران حساب میشه این یکی از اون شاهدی که اون روز از کتاب قرطبی گفت گفتین همین شعر معروفی در کتب ادبیات هم هست یه جاهات و سنا لهلتیام و ولایتام و ماجر اهل لسان می‌بینید تعبیر می‌کنم یه اصلا شمشیر هم بر انسان زخم می‌زنه زبان هم زخم می‌زنه ولایتام ماجر هم لسان اونی که جرح اهل لسان می‌بینید غیبت سو ابنو جرحل جرح این که میاد وقت رو جرح میگیره شما عادتا در جرح دیه قائلی به قلقه یه این که میاد میگه جرح لسان شما پشت سر ما مثلا این به شما داریم مثل که شمشیر به به زدیم کیر به من, کیر به من, کیر به من این من اعتقادم اینه که توی این مسئله یک فهم عرفی بوده سعی شده این فهم عرفی رو مثلا با بایار ثابت شرعیش بکنن این صافت باره باید اما مشکله اما خود فهم و عرفیش هست نیمیشه میشه کارشه بله ممکن است شما همین رایی که آخر شیخ رفتن ما یک مقدار فهم و عرفی قبول میکنیم این فهم و عرفی برای در اصطلاف فقهیه ما میگم برای استیناس برای استیناس خوبه اما برای استحسان خوبه اما برای استبلال خوب نیست این فهم و عرفی به درد استنباه و استدلال نمی کنه هم خوبه استحسانان هم خوبه یک برای استیناس بد نیست اما برسه به حدی که بهش استدلال بکنیم مشکله الان یه حال با قطع نظر از این نقطه ایم که ارز کردیم اگر ما باشیم و باز باز باز با مختزای این قاعده عرفی بود با مختزای قواعد مجموعه قواعد شرعی اولا ما قبل از اینکه که واردیم بحث بشیم این البسه مطرح بکنیم که اسوده غیبت بنابر اینکه جزو کبائر باشه درش استغفار هم شرطه توبه شرطه صاحبنا عسکری به قول اسوده یکی از تکالیف انسان اینه که اگر گناه کبیره انجام داد توبه بکنه توبه خودش واجبه حالا ایده گفته واجب عقلیه، ایده گفته واجب شرعیه ایده هم تفصیل قاعده که خود ما بودن این تفسیرش اینجا جدیه این توبه واجبه و شد که در باب صغائر توبه نمیخواد از صغائر و مکفرات انتجسر بو کبائر ما تنهونع نکفر عنکم سیئاتکم بحثش مفصل گذشت پس یه بحث اساسا اینه که آیه غیبت اگر جزء صغائر باشه خودت غفر کن مختزای قاعده اینه که استغفار نمیخواد توبه هم نمیخواد خود به خود پوشیده میشه مکفرات و در نتیجه اگر ثابت شد یک نوع حقی رو برای مردم ایجاد کرده همونطور که در این شعر عربی آمده ولایل و ماجر اهل لسانو این ماجر اهل لسان درست نمیشه این جزو جرحل لسانه خب طبیعتا باید بگیم این مفهوم عرفی در حد و عرفیش استهلاله مثل یک حقی ثابت میشه این مفهوم عرفی چیزی نیست که مال بیاد ارش بیاد که نور هدیت میگه میگه یا ارش بیاد یا نه و چون اعصابت نیست نه لازم نیست در هر جا که زخم بود حتما عرش بیاد هر جا مناسب خودش در اینجا مناسب خودش استحلاله به تبینشه و استغفارله هم باید به نه ثابت بشه و الا این با مفهوم و عرفی نیست اون وقت مرموم شیخ با این استغفارله رو با دو راه به اصطلاح رفتن یکی روی قاعده عامه در باب ظلم منزلم احدن ففاتوه فليستغفر الله له این در باب ظلم و غیبت هم ظلمه پس سالی هستن لکن موضوع این ففاتروز لکن انصافت توضیحاتش گذشت قبول روایت اصلا در مورد خود ظلمش هم مشکلی چه درسی به تحریمش رسید توضیحاتش که تا نمیدونید در مسئله استغفار له، همین روایت حبسه آمر و حبسه از همه بهتره به انصافه هم با در نظر گرفتن مجموعه شواهد شاید گوستوبالمایی بهش پیدا بشه در خصوص استخبار لحب استخلال که یا بعد اون کیپیاد اون چی که در اینجا موقعه اضافه کنیم اینه توی اده از این روایات مثل حتی روایت مثل مصلاح شریعه دو تا رو یکی مسئله استخلال که از مسئله استخبار این یک نکته فنی اینه چرا در این روایات یا کفارهت الاختیاب ان تستغفر لمن او چرا در این روایت خود استغفار نیامده یک شبهه که که ما درست کرده اینه چون به قیبت حال غیبت که حرام جزء کبائره آیا از این که در روایات شما این روایاتی که شما علام خوندید گونه کفاره غیبت هیچ کده نشه اون فدی از سخط اللّٰه مگر نوسی که بعضیش تو شولاله استغفار ده تو نشه بله همه فلی استغفر الله له خیلی عجیبه در هیچ یک عز... یا تو ارزش استهلال هم بود یخرجن احدتی بود اما استغفار الله نبود یعنی خیلی عجیبه دوست جعفریاو الله. الله این یکی که من دارم یعنی کتاب دیروز گفتیم در این نوثه ای که در کتاب قربله در کتاب وسائل حاجی نوری آورده فلی از تغفر الله لحب موضوعفن اینکه حالا غیر از اینکه اگر در این نسخه نبوده یه مشکل روایت جعفر یاد آبهو داره روی جه فاتحو که ثابت نیست آبهو ثابت نیست با شواهد موجود فاتحو بیشتر میخوره تا آبهو پس دقت بفرمایید این مطلبی ایست که نیدم حتی استاد دیگران منتفض شده باشن که اصولاً این روایات از عجیبش این همه هایت خوندید دیگه بلسنه مختلفه از عجایب این روایات اینه که بحث استغفار و خودشم مگرد تو همون دعای صحیفه که حالت استغفار داره که اونم از کم دلالتی بر بحث ما نحنو نداره و از عجایب اینه که مثلا استحلال با استغفار لحفرد آمده یا کفارت و قیبه هم تستر خواهده من خیلی عجیبه. لذا یک شبهی که توزه ما آمده شبه درد شبه نکنه این ربایاتی رو که به اصطلاح آمده شاید مفروغان ان بوده که قیبه جلو سوائره و مکفره نکنون و لذا احتمام این روایت رفته رو جانب حق و ناسیش اصلا رو به حق کلایی زرزه رو دقت بکنه. به عکسش اینجوری مخروقانه ان بوده که حق الله و استغفار داره استغفار دی مخروقانه ان آرزووارش هم میشه نمیدونم فلان در شما اون چیزی که نیامده استغفار ازش خیلی مشکله چیزی نیامده رو بخوای از نیامده لو از و اون عادیه بخوای چیز دررير خیلی مشکله <تصفح> از نویشته میشه به اما شما از ننوشته بخوای در این که مخروقانه خوبم میگم نه اصلش شاید بوده این خیلی مشکله باید با قوانین فرابانی در از یک مشکلی که دیشب داشتن در این رو تعمل میکنم روی کفارات و قیبه یک مشکلش این که اصل استخبار توش نیست اصل استخبار نه این که استخبار لحک استخبار خود انسان نیست آیا مراد این وقایات این بوده که قیبه اجاز کبائر نیست و خود به خود به لحاظ حق اللهیش متفره و زا حق الناسی ذکر شده همینطوره انصافا خیلی مشکلون ذکر نشده فقط من محاسم تنبی، تنبهی بشه این پیدا بشه که این چه کارش بکنیم با این همه روایات حالا روایات عدلش بد نیست ولو به طبی شهر است لیکن یک مشکلی از این جهت داره مثل خلیصا مفسباه شبیه که فقط استحلال و استخفار و لح رو برده غیر از این چیزی نه برده. مثلا باید میفهن کفا و بعد ان تسخر الله لا ان لا تعود که در نهج البلاغه هستن تو آخر نهج ولای در حکمت 147 هست شماره حکمت امروز از, از 147 بود که یک نفری پیش از هزار گفت از تخره الله هزار کانا 6 تا حد داره یکی شینی که حق مردم رو به دیگه همین مناسبت ابن ابی حدید وارد بحث شده تو نه خب راسته از بگه اگه اصلاحق مردم داره چه استخفار میکنه مانگه چه استخفار داره میکنه مان مردم دوزید تو خونه شده میگه اللهم استخفار الله هم استخفار الله برد تو بولی چه خب مان مردم بده استخفار چی بولید چی ناطی داره استخفار از تم خدمت واسه آتون پس این انصافن به لحاظ فهم عرفی این مطلب خوبه انصافن یعنی. اما این که این فهم عرفی در حدی برسته که بگیم شاره روی این حساب با سرده و حکم شرعی ترمون آمده با این ادله موجود کافی نیست توی مجموعه یه روایتی در این بابه به اصطلاحشون کفارات بگی آورده توی مجموعه شما از همه بهتر روایت یعنی بهتر قیاسی نه بهتر فی نفسه بهتر قیاسی همون روایت حفص سبنه اگر بگیم چون سنیا زیاد نرکر و از همه ضریف حس رو کنیم که مثلا یک تفکری بوده که اینه بماسونه و درست نیست و هر حال نسبت به بقیه روایت بلازم مسلرش از مصدرش مقصد شد کتاب جهمه بهتر از بقیه است. ولی علم و اندالله انصافا خوبه احتیاطا حالا شاید حتی به حد احتیاط وجوی برسه که انسان استقفار الله رو انجام بده الله رو استهلال ثابت نیست ان رو برای استعناس بود بعدش هم استهلال گاهی وقت حتی اگر بشاسیده باشه گاهی اوقات منشأ دعوا میشدند همونطور که دیروزم خوندم از اجرونی که به ابن سیرینی که میگه من قیظ کردن حلال کنم گفت نمی کنم خدا حرامش کرد چرا حرام نمیشه از گاهی اوقات این استهلال دیروز خوندم از کشف الخفا اجرونی به الله گفت اجل میگه هل گفت نه خدا خودش کاری که خدا حرام کرده من چرا حلال بکن؟ چرا بکنم همه خدا گفته حرام رو توی خود کار حرام آنجا در دزم این که انصافاً این که استحلال رو بخوایم درست بکنیم این هم روشن نیست ابحام داره ارز کردم حضرات متکلمین اشائر معتظره خوب دیگه بگه حرفا شما خودم تکرار نمیخوایی بکنم استحلال رو قباید عقلی درست هم نه لیکن استحلال و اونا در صورتی که بلغت پلقیبه به این قیب ادال لم تبلغ هم گفتن کاریشان داشته باشه چیزی نیست اما ادال بلغت ها استحلال باشه خیلی از علمانی ما بعدها در فقه ما چون در کلام ما مثلا محوم علامه در زیل عبارت خاج نصیب در, در تجریح ظاهرش اینه که مبنای خاج نصی رو گرفته که همون مبنی معتذره است. که اگر بلغت ها یعتذر اگر لم تبل استحلال بکنه و لکن عده از اولوای مهمسه در شهیدثانی هم مسئله شیخ گفتن استحلال به الا پر اینم دلیل نداره این مطلبی که شما در الاحوال اینم دلیل نداره ان شاء دیگه با تعامل در هدله و وجوهی که گفته شد مطلب ان شاء الله روشن میشه بله اگر اون اعتذار برش آثار بدی بار نمیشه اگر کسی بخواد احتل... است... احتیاط مطلق میکنه اعتزار و استخفار لحب به اضافه از استخفار نفسه اون که مسلم و مخاطر کبیره بودن قیبت مرحث سبب بیروی که ایشون فهمونم بحث مستثنیات از قیبت جاهایی که غیبت هست قیبت هست لیکن جایز چرا؟ قبیه بله جای مناقشه بود عدله خیلی روشنم هم روایت هم داریم که حتی بعد علیه به نار لیکن سند روشن دارم داره چرا روایت داره تصریح به نار داره اصلا داره که آخر من اول من یک صاحبشم راضی بشه آخر من یک روی نشه آخر من یک روی نار اول من از خلوف نار حلا یه داریم اما نقی و سند نه در بحث مستثنیات مرحوم شیخ قدس الله نفسی یک قاعده که ما در اینجا متعرض چه مقدار از مستثنیت میشه این شو خب یه قاعده کلی میریزم این قاعده درسته این هم عقلیه هم نقلیه در قاعده عقلیش این طوریست ما اناوینی رو که در باب حسن قبه عقلی مفرح میکنیم به طور طبیعی سه جوره اونهایی که علت تامه برای قبه هم یا علت تامه برای حسن اینها ها اروز عنوان عکس برایشون نمیشه مثلا ظلم حسن ما نداره ظلم ظلم گنج قبیح دو اونایی که اقتضای حسن و قب داره برابر رأی معتزله رأی اشاعله که اقتضای حسن دارن مثل كز. كز داره مثل کز کذب اقتضای قب داره صدم اقتضای حسن داره در مقابل اشاعله میگن اقتضا هم نداره مثل غزالی بیان شهرت دلیل داره, داره بحثی مثل قربیای امروز از راه انگیزهای شک نشد ایشون معنانا میگن اقتضای اشتباه شده از واره گیزای شدت شده پیدا شد. حالا من با بحثی بحث میخوام بشه. پس یک اقتزاد داره. ما اینه که میبین کن چون میگه میشه اینه که اقتزاد داره با هفزوا عنوان یه عنوان دیگری برش عروس پیدا بکنه رو تأثیر نکنه. مثلا که باشه، اما یک عنوانی برش پیدا بشه حوصله پیدا بکنه. این دلیل است من ابر بین ما و متکلمین خود ما. بسن سر با مالا الیعته تامم والا اختزام مثلا شور با آب شور با آب چی نداره نه اتداهوس نه اتداکیز مثلا الیعته تامم داره, داره. داره. داره. مثلا عنوان ضرب بچه مثلا زرب یتیم می‌بکشیم زرب بچه این فی نفس یا زرب شر این فی مثلا زرب مثلا جلوس جلوس فی نفس عنوان اختزامی نداره اما اگر مسلاطی لریش باشه به درجه مسلاط مثلا هوس پیدا میکنه مفسدی باشه ولی جیم مفسدی و به فایده کردن اصطلاحاً یک تقسیم سه‌لاسی در بحث اخلاق در ال... در بحث عقل عملی دارند علت تامه مسئله و مسئله مالا اقتضایی و چه بحثا تو دیگه باید بحث, بحث بشه خیلی نظیر این هم توی روایاته مثلا میگه از یک اون فص از روایات داریم که کذب و به و لکن خب ممکنه از روایات هم داریم همینه که قبیهه ممکن است یک عروض عنوانی بشه که عوض بشه اینجا به اولاها تطابق قلع اقل و نقل و نظر این آیون که قیبت از قبیل کذبه از قبیل ظلم نیست قیبت از قبیل کذبه چون از قبیل کذبه ممکن است با عروضی یک عنوان حسن بشه خوب دقیق فرمونید فی نفس قبیه اختیزای قوم هم داره لیکن ممکن است با اروز و عنوان حسن میشه لذا این بحث رو ما از این زاویه تو بحث نمیم چون ممکن ده ها عنوان ذکر بکنیم که اینا موجب حسن قیبت بشیم ما الان وارد این بحث در این ها نمیشیم وارد بحث میشیم در جاهایی که شارع به ادله خاصه تعبودن فرموده قیبت اشکال نداره پس در بحث استثناء قیبت دو جور میتونیم استثناء بکنیم یک به عنوان کلی هر جا عروز عنوان حسن شد ری از رحمت میفته این بحث کبری نیست عددی هم نداریم چیزی 5 تا 6 تا هفت تا هشت تا عنوان هم نمی‌تونیم بشدین این نمی‌ذاره به قاعده عامه فقط چیزی که هست باید اثبات بکنیم که از قبیل ظلم نیست که علت تام نباشه از قبیل کذبه که مختزی این رو باید مثلا بکنیم و الا که بقیهش مشکل نداره و بگیم چون در روایات هم آمده در مورد از قیبت پس معلوم میشه یا در آمده یا در روایات معلوم میشه که در اینجا ما به اصطلاح قابل, استس... قابل تغییر و عنوان طرف و عنوانی که محسن او باشه معقوله و غیبت حسن میشه این مقدمه اول که ایشون میرشتن معلوم آقای کوی هم و تایید فر درست هست؟ اصل این مطلبا مرمون جامعه مقاصد داره ایشون رو جامعه نهار کردن این درست ولی ازا ایشون میگه که دو تا مورد لجواز من مندون مسلحته که اگر مسلحتم نباشه قیبت در دو مورد جریه ایک ای اداکار مختب متجاهن به بعد ایشون در اینجا وارد شدن اگر آرون وقت کردن که ما کارمون ساده تر بشه آنل دیاره چیکار بکنیم آقای خوی روایاتی رو که شیخ زرگیزه کرده و استدلال های شیخ رو مناقشه کرده تمام روایات رو زعیب و سند گرفته و مناقشه کرده یکی دو تا روایات صحیحی داره که دلالت نداره بعد البته مطلب قبول میکنم که متجاهره به فس قیبت نداره اما از این راه ادله سمعیه وارد نمیشن اینشالا فهمیم به ازن الله تعالی کرده الله الله و عالمان حاله تاه